فصلدهم بدون اینکه فکر کنم چه میخواهم بگویم گوشی را برداشتم و شماره مونیکا زییلز را گرفتم. هنوز زنگ اول تمام نشده بود که گوشی را برداشت و گفت الو شنیدن صدایش حالم را جا آورد. او باهوش و قوی است. گفتم: «من هانس هستم میخواستم حرفم را قطع کرد و گفت: «آخ شما لحن صدایش نشان نمیداد که از من رنجیده باشد فقط پیدا بود که منتظر تلفن من نبوده. بلکه انتظار تلفن کس دیگری را داشته شاید تلفن یک دوست یا مادرش با وجود این ناراحت شدم گفتم میخواستم تشکر کنم شما خیلی لطف کردید میتوانستم بوی عطرش را بشنوم عطر تایگا یا هر اسم دیگری که داشت برای او بیش از حد تلخ بود گفت خیلی متاسفم باید برای تان خیلی ناراحت کننده باشد نمیدونستم از جرف میزند انتقاد کاسترت که گویا تمام بن آن را خوانده بودند یا عروسی ماری یا هر دوی آنها آهسته پرسید: «کاری می توانم برایتان بکنم؟ گفتم: بله می توانید بیایید اینجا و به حال روح من دل بسوزانید همینطور به حال زانویم که حسابی ورم کرده چیزی نگفت. توقع داشتم فورا قبول کند. از اینکه ممکن بود واقعا بیاید به وحشت افتادم. ولی او فقط گفت: «امروز نه منتظر مهمان هستم. او باید اضافه می کرد که منتظر کیست یا دستکم میگفت یک دوست دختر یا پسر مهمان اوست کلمه مهمان مرا رنجاند گفتم خب پس شاید فردا با این حالی که دارم دستکم باید یک هفته در تخت بمانم گفت کار دیگری از دستم ساخته نیست منظورم کاری است که بشود پشت تلفن انجام داد این را با صدای گفت که امیدوار شدم مهمانش دختر است گفتم، چرا؟ شما می توانید مازرکای شپن در سی ماجور اپوس هفتم را برایم بزنید خندید و گفت، چه چیزها به فکرتان می رسد؟ تنین صدایش باعث شد، حس تک همسریم برای اولین بار به لرزه بیفتد گفت، من از شپن زیاد خوشم نمیآید و نمیتوانم توانم قطع آتش را خوب اجرا کنم گفتم، خدایا چه اهمیتی دارد؟ نتهایش را دارید؟ گفت، باید همین جاها باشد، خواهش میکنم یه لحظه گوشی را زمین گذاشت. صدای پایش که در اتاق به دنبال نتها میگشت به گوش میرسید چند دقیقه طول کشید تا دوباره آمد و در این فاصله یاد داستانی افتادم که یک بار ماری برایم تعریف کرده بود. او میگفت حتی بعضی از مقدسین هم مشوقه داشتند البته فقط از لحاظ روحی. با این حال این روحانی بودن هم مانع از بخشیدن آن چیزی که این زنان داشتند به آن مردان مقدس نمیشد من حتی این را هم نداشتم. وقتی که مونیکا دوباره گوشی را برداشت در حالی که آه می کشید گفت آه مازورکه ها را پیدا کردم گفتم خواهش می کنم های سی ماژور اپوس هفت شماره یک را بزنید گفت سال هاست شپن نزده باید کمی تمرین کنم گفتم شاید دلتان نمی خواهد شپن زدنتان را مهمان بشنود در حالی که می خندید گفت <تصفيق> آه هیچ مانه ندارد بشنود آهسته پرسیدم زامرویلد؟ اظهار تعجبش را شنیدم و ادامه دادم اگر واقعا اونجاست در پیانو را به سرش بکوبید، گفت ها حقشی نیست او شما را خیلی دوست دارد گفتم این را میدانم و باور میکنم ولی دلم میخواست شجاعت کشتن او را داشتم سری گفت کمی می میکنم و مازور کار را برایتان میزنم خودم تلفن میکنم گفتم باشد ولی هیچکدام گوشی را زمین نگذاشتیم صدای نفس کشیدنش می آمد. میآد نمیدانم چه مدت صدای نفس هایش را می شنیدم بعد گوشی را روی تلفن گذاشت. اگر قتل نمیکرد من زمان درازی گوشی را در دستم نگه می داشتم تا صدای نفس هایش را بشنوم. آه خدای من، کاش دستکم مرا از شنیدن صدای نفس کشیدن یک زن محروم نمی نمیکردی. لوبیاهایی که خورده بودم سر دلم سنگینی کرد و مالیخولیای من هم شدت گرفته بود به آشپزخانه رفتم کنسرو لوبیا را باز کردم و توی همان دیگی که اولی را گرم کرده بودم ریختم و گاز را روشن کردم صافیه پر از جرم قهوه را توی سطل آشغال انداختم و یک صافیه تمیز برداشتم چهار قاشق قهوه تویش ریختم آب روی اجاق گذاشتم و سعی کردم آشپزخانه را مرتب کنم دستمالی روی قهوه‌ای که زمین ریخته بودند انداختم و قوطی‌های خالی و پوست تخم مرغ‌ها را در سطل زباله ریختم. من از اتاق نامرتب خوشم نمیآید ولی خودم هم نمی توانم مرتبش کنم. به اتاق نشیمن رفتم، گیراس های کثیف را جمع کردم و در ظرف شویی آشپزخانه گذاشتم. چیز نامرتب دیگری در آپارتمان وجود نداشت. و وجود این نامرتب به نظر میآمد. ماری روشی سریع و خاص در مرتب کردن خانه دارد. او کاری می‌کند که بدون تغییری چشمگیر، اتاق مرتب و منظم شود. رمز این کار باید در دستهایش باشد. فکر دست های ماری، فقط تصور اینکه آنها را دور گردن تسبفنر بیاندازد، مالی خویای های مرا تا حد ناامیدی محض تشدید کرد. یک زن با دستهایش می تواند چیزهای زیادی بگوید یا تظاهر به انجام کاری کند به نظرم دست های مردانه در مقایسه با آن چون کنده درخت بی حرکت و خشک است. دست های مردانه تنها به درد دست دادن، کتک زدن تیرانداختن و امضا کردن میخورد فشار دادن کتک کاری، تیراندازی امضای چک این تمام کارهایی است که از دست های مردانه برمیآید و البته کار کردن در مقایسه با آنها دست های زنانه دیگر دست نیستند فرق نمی کند. کره روی نار می مالند یا موها را از پیشانی کنار می‌زنند. هنوز هیچ عالم الهی به این فکر نیفتاده که درباره باره دست زنانه در انجیل صحبت کند ورونیکا مگدالنا، مریم، مارتا، این همه دست های زنانه در انجیل هست که نسبت به مسیح مهربان بودند اما آنها به جای آن درباره قوانین، اصول، نزم، هنر و دولت مععزه می کنند. باید گفت مسیح در زندگی خصوصیش تنها با زنها معاشرت کرده است. طبیعیست است او به مردان هم احتیاج داشته باشد مردانی چون هربرت کالیک که با قدرت ارتباط دارند و طبیعتشان با سازمان دادن و این قبیل مزخرفات سازگار است او به مردان احتیاج داشته همونطور که آدم هنگام اسباب کشی به باربر احتیاج دارد برای کارهای خشن پتروس و یوحنا هم چنان مهربان و دوست داشتنی بودند که به سختی میتوان به آنها مرد گفت پولوس البته از نظر رومی ها مردانه بود و لیاقت مرد بودن را داشت. در خانه به مناسبت های مختلف برایمان من انجیل می چون در میان غام وخیش ما کشیش فراوان بود ولی هیچ کس درباره باره زنهای انجیل یا معزلی غیر قابل درک به نام تقسیم ناعادلانه ثروت در جامعه حرفی نمی حتی در جمع کاتولیک های گروه هم هیچ کس نمی خواست تقسیم ناعادلانه ثروت صحبت کند. هر وقت در این بار از کینکل و از سوال میکردم آنها دست پاچه می و جوری لبخند می زدند که گویی مچ مسیح را هنگام ارتکاب عملی شنیع گرفتند و هفرت بایل می این اصطلاح در نتیجه استهلاک تاریخ پدیدار شده است او را همونطور که خودش می این نامعقولی پول رنج می داد. مثل اینکه پول چیزی اغلایی است در دستهای ماری حتی پول هم خاصیت مسئله بودنش رو از دست میداد او روش جالبی برای خرج کردن پول داشت بی توجه و بی احتیاط و در عین حال هوشمندانه و حسابگر چون من مخالف چک و دیگر اقسام پرداخت پول بودم همیشه دستمزدم را نقد می‌گرفتم و احتیاجی نداشتم که برای بیشتر از دو یا سه روز برنوم ریزی کنم ماری به هر کسی که تقاضا کرد حتی کسانی که در خلال صحبت معلوم می‌شد، احتیاج دارند پول میداد یک بار به پیش خدمت کافی در گوتینگن آنقدر پول داد تا بتواند برای پسرش که به سن مدرسه رسیده بود پالتو بخرد او دائما به مادر بزرگ های که برای شرکت در مراسم تدفین میرفتند و گیج و پریشان به کپه های درجه یک سوار میشدند کمک میکرد و اضافه بهای های بلیتشان را حساب میکرد مادر بزرگ های بیشماری وجود دارند که با قطار برای تدفین بچه سفر میکنند. البته بودن مادر بزرگ که تظاهر به درماندگی می کردند تا حس ترحم دیگران را تحریک کنند. آنها با چمدانی که پر از بسته های کالباس و شیرینی بود در کپه های درجه یک پلاس بودند. در این جور مواقع ماری مرا مجبور می کرد که چمدان و بسته ها را روی جا چمدانی کپه مرتب بچینم. با وجودی که تمام آدم های توی کپه می دانستند که مادر بزرگ یک بلیت درجه دو توی جیبش دارد. ماری به راهرو میرفت و قبل از اینکه مأمور کنترل بلیت به مادربزرگ گوش زد کند جریان را با او در میان میگذاشت و تفاوت بهای بلیت را پرداخت میکرد ولی حواسش بود که پیش از رفتن از آنها بپرسد که چه کسی مرده و به کجا می روند تا تواند اختلاف قیمت بلیط را درهست بپردازد تفسیر مدربرگها از رفتار ماری اغلب در این کلمات محبت آمیز خلاصه میشد جوان ها به آن بدی هم که میگویند نیستند و مزد ماری را با ساندویچ بزرگ کالباس می دادند تا آنجا که من دقت کرده بودم به ویژه میان دورتموند و هانوفر هر روز مادر بزرگرگها برای شرکت در مراسم تطفییم در راه بودند. ماری از اینکه ما همیشه با بلیت درجه یک سفر می کردیم خجالت میکشید و اینکه کسی را به علت داشتن بلیت درجه دو از کوپه بیرون بیاداند برایش غیرقابل تحمل بود. او صبری تمام نشدنی برای شنیدن توضیحات بسیار پیچیده در باره نسبت های خانوادگی و تماشای عکس قوم و خیش های آدم های غریبه داشت یک بار دو سه ساعت در کنار زنی دهاتی اهل بوکه برگ نشستیم این زن بیست و سه نوه و نتیجه داشت و عکس تمام آنها توی کیفش بود و ما بیست و سه شرح حال را شنیدیم و عکس بیست و سه زن و مرد جوان را دیدیم که هر هرکدام به جایی رسیده بودند بازرس دولتی در مامستر یا زن معاون راه آهن، مدیر کارخانه چوب و یکی از آنها کارمند حزبی بود که ما همیشه به آن رأی می دهیم. خودتان می دانید کدام حزب را می گویم؟ و درباره یکی دیگر که در ارتش خدمت می کرد ادعا داشت که از موقعیت ویژه برخوردار است و همیشه کارهای حساس و مهم به او واگذار می شود. ماری همیشه در این داستان‌ها غرق می‌شد و با علاقه و اشتیاقی وصف ناپذیر به آنها گوش می‌داد و دم از زندگی واقعی می‌زد. برای من تکراری بودن این داستان‌ها کننده بود. مادر بزرگ‌های زیادی میان دورتموند و فردر در رفت آمد بودند که نوه‌هایشان یا کارمند راه آهن بودند یا عروسهایشان در جوانی مرده بودند. چون زنان امروزی همه بچه ها را به دنیا نمی آوردند و همین باعث مرگشان می‌شد. ماری نسبت به پیران و نیازمندان خیلی مهربان بود او به آنها در هر موردی کمک میکرد حتی برای گرفتن شماره تلفن یک بار به او گفتم بهتر بود در قسمت خدمات راه آهن به منظور کمک بلاعوض به سالمندان و نیازمندان کار میکرد او کمی رنجیده جواب داد مگر عیبی دارد؟ من از روی بدجنسی حرف را نزاده بودم حال ماری نه به شکلی رسمی ولی به نوعی نقش کارمند این اداره خدمات راه آهن را بازی کرد گمان میکنم تسوفنر و ماری برای نجات یکدیگر با هم ازدواج کرده بودند. ولی مطمئن نبودم تسوفنر اجازه بدهد ماری از پولش اختلاف قیمت بلیت مادر بزرگار را بدهد. نه اینکه خسیس باشد، نه ولی مثل او به شکل خسته‌کننده ای بی بینیاز به نظر می رسید او مثل فرانچسکو آسیزی نبود که در عین بی‌نیازی بتواند نیاز دیگران را درک کند. اینکه ماری حالا پول تصفنر را در کیف دارد همانقدر غیر قابل تحمل بود که کلمه یه ماه اصل و این فکر که من می توانم به خاطر ماری مبارزه کنم. مبارزه فقط میتواند بدنی باشد. من حتی به عنوان دلغکی که بد تمرین کرده است قویتر از تصفنر یا زمرویل بودم. قبل از اینکه آنها بتوانند گارد بگیرند من با سه پشتک خودم را به پشت آنها میرسانم، دستانم را روی سر و گردنشان قفل می کنم و آنها را زمین میزنم. شاید هم به نظر آنها مبارزه نوعی کتککاری وحشیانه و, و خرد بود تصور هر چهار شکل شرارت آمیز افسانه نیبلونگن ها از آنها برمیآمد؟ شاید هم منظورشان مبارزه معنوی بود من از آنها نمی ترسیدم ولی اگر چنین فکری در سر داشتند چرا به ماری اجازه نمیدادند دادند نامه مرا که نشانه نوعی مبارزه معنوی بود جواب دهد این حقباس ها کلماتی مانند ماه اصل را به زبان می آوردند و به خود اجازه میدادند دادند که مرا وقیح و بی بخوانند بخوانند. همه ی آنها چاپلوس و متظاهرند. بعد نیست یک بار پای درد دل پیش خدمت ها و خدمتکاران هتل بنشینند تا ببینند چه چیزها از کسانی که به ماه اصل می روند تعریف می کنند، هر آدم بی سر و پایی در قطار توی هتل و هر جایی که بروند در گوش دیگری زمزمه می ماه ماه از هر هر بچه می تواند بفهمد که آنها دائم با هم آن کار را انجام می دهند چه کسی ملافه های کسیف رو از روی تخت جمع می کند و می شوید. هر وقت ماری دستهایش را دور گردن تصبح نرمی اندازد باید یادش بیاید که من دستان سردش را زیر بغل گرفتم و گرم کردم. دست‌های اوست که در خانه را باز می‌کند. ماری کوچک را آن بالا در اتاقش از گوشه تخت به وسط می‌کشد. آن پایین در آشپزخانه توست کن را به برق می‌زند. آب را روی اجاق می‌گذارد تا گرم شود و سیگاری در می‌آورد و روشن می‌کند. این بار یادداشت دخترک خدمتکار ن روی میز آشپزخانه که روی یخچال است به سینما رفتم ساعت ده برمیگردم. در اتاق نشی من روی تلویزیون یادداشت تصفافمه را یابد باید فورا نزد فه میرفتم بوس بوس هریبرت. یخچال به جای میز آشپزخانه بوس بوس به جای بوسمت در آشپزخانه در حالی که مقدار زیادی کره و کالباس جگر را روی نانهای برشته شده میمالی و به جای دو قاشق سه قاشق پودر شکلات توی فنجان میریزی درمان لاغری با رژیم خانم بلوترت را به یاد میآوری یادت میآید وقتی شیرینی دوم را برداشتی چطور جیغ کشید که آخر این روی هم بیش از 1500 کالری می شود می توانید آن را تحمل کنید؟ آیا نگاه قصابانه ای او را به کمرت به یاد داری که این معنای بر زبان نیامده را میداد نه شما نمی توانید آن را تحمل کنید آه ای مقدس ترین تازه کا کا کا کا و صدر حرفش رو تایید کرد که بله بله داری چاق میشوی در شهر نجوا می کنند. در شهر شایع احساس ما نجوا می کنند که چرا پریشانی که چرا آرزویت تنها ماندن در تاریکی است که چرا تنها به سینما و کلیسا میروی و در اتاقی تنگ و تاریک برای خود پودر شکلات در فنجان میریزی و نان برشته میکنی وقتی بنگل جوان در آن مهمانی رقص از تو پرسید خانم محترم سریع بگویید که چه چیزی دوست دارید برای تا برایتان بیاورم سریع تو به او چه گفتی؟ تو باید حقیقت را می گفتی بچه ها، جایگاه اعتراف، سینماها، ها، عبادت و آوازخانی دست جمعی کلیسا به شیوه گرگور و دلغک را خانم محترم دلتان مرد نمیخواهد تو باید جواب میدادی چرا چرا اما تنها یک مرد نه مردهایی از این قماش اینها همه احمقند اجازه میدهید این گفته را به گوش همه برسانم او نه نه نه نه تورا به خدا نه وقتی گفتی تنها یک مرد چرا نگفتی مرد خودم دلقکم وقتی کسی تنها یک مرد را دوست دارد فقط میتواند مقصودش مرد خودش باشد مردی که با او عروسی کرده است اما مثل اینکه واژه شوهرکم در میان راه خورده شده و بر زبان نیاد دختره که خدمت به خانه باز می‌گردد. کلید را داخل قفل میکند در باز میشود در بسته میشود چراغ راهرو را روشن میکند چراغ راه رو را خاموش میکند چراغ آشپزخانه را روشن میکند در یخچال را باز میکند در یخچال را میبندد چراغ آشپزخانه را خاموش میکند در راه رو آهسته تلنگری به در اتاق میزند شب بخیر خانم رئیس شب بخیر ماری که خیلی اذیت نکرد نه دختر خوب بود شب بخیر چراغ راه رو خاموش میشود صدای پاهایی که آهسته از پله بالا میرود تو آنجا تاریک نشسته یا به موسیقی کلیسا گوش می دهی. تو تمام چیزها رو با دستهایی لمس میکننی که ملافه ها رو شستند و من آنها را زیر بغلم گرم کردم. گراموفون، صفحه موسیقی دستگیره دکمه فنجان نان، موی بچه ها، پتوی بچه، راکت تنیس راستی چرا دیگر تنیس بازی نمی کنی؟ شانه هایت را بالا میاندازید. بی تو دیگر دل و دماغ بازی کردن نداری؟ تنیس برای همسران سیاست و رهبران کاتولیک خوب است نه نه نه هنوز این دو با هم یکی نیست تنیس آدم را لاغر چالاک و آراسته نگه می دارد. فه با اشتیاغی زیاد با تو تنیس بازی می کند از او خوشت نمی آید چرا چرا او صمیمیت خاصی در وجودش دارد بله بله میگویند گویند که او با زبان بازی و پس زدن دیگران وزیر شده است او را دو به همزن و بد جنس و خائن می دانند و با وجود این علاقش نسبت به هریبرت اصیل است آدم های بزن بهادر و فاسد گاهی از آدم های با وجدان و درستکار خوششان می آید خانه ساختن هریبرت مگر بدون هاقبازی انجام نشد؟ بدون اعتبار مخصوص بدون کمکهای حزبی بدون کمک دوستان مذهبی تنها چون میخواست خانه را بر دامنه بسازد مجبور شد پولی اضافه بدهد و همین را او به خودی خود نوعی رشوه دادن میدانست. ولی همین شیب وجوهی منفی دارد کسی که روی دامن خانه میسازد میتواند میان باغ‌های سراشیبی و, و سربالایی یکی را انتخاب کند هریبرت سراشیبی را انتخاب کرد اما همین که ماری کوچولو شروع به توپ بازی کند تصمیم اشتباهش دیده خواهد شد توپها همیشه به طرف بوته های میان دو باغ میگلتند از آنها میگذرند و در باغچه شاخه های کوچک و گل ها را میشکنند گیاهای های خزایی حساس و گرانبها را له میکنند و باعث عذرخواهی دائمی از همسایه ها میشوند آخر ادم چطور میتواند از یک چنین دختر بچه با بامزه ناراحت شود؟ آدم نمیتواند با کلمات خوش و روی گشاده خود را بی‌تفاوت نشان میدهند ولی لبهای متشنج از رژیم لاغری و گردنهایی با عضلات منقبض نمیتواند بی‌تفاوت باشد. تنها راه نجات یک دعوای حسابی و ناسزاگویی است. اما همه چیز غوط داده می شود. شما در رابطه با همسایه‌ها تظاهر به صمیمیت میکنید تا وقتی که در یکی از شب‌های ساکت و آرام تابستان پشت رهای بسته و پردههای کشیده ظروف عتیقه و اسیل را به در و دیوار میزنید من میخواستم تو تو نمیخواستی صدای شکستن ظروف اسیل وقتی به دیوار آشپزخانه پرتاب شود صدایی اسیل نیست آژیر آمبولانس ناله کنن از سربالایی بالا میرود شکسته شکسته، خزههای زخمی دست بچگانه توپ بچگانه را در باغچه به غلطیدن میآورد ناله آژیرها خبر از جنگی غیر قابل توضیح میداد. آه چه خوب بود زمین سر بالایی را انتخاب میکرده ایم از صدای زنگ تلفن جا خوردم گوشی را برداشتم از خجالت سرخ شدم مونیکا زیفز را فراموش کرده بودم او گفت الو هانس گفتم بله ولی هنوز نمیدانستم چرا تلفن کرده است وقتی گفت خودتان پشیمان خواهید شد به یاد مازورکا افتادم دیگر راه برگشتی نبود نمی توانستم بگویم از خیرش گذاشتم باید تمام این مزرکای وحشتناک را می شنیدم شنیدم که چگونه مونیکا گوشی را روی پیانو گذاشت و شروع به زدن کرد بسیار عالی می زد و من از شدت درماندگی به گریه افتادم من نباید سعی می کردم این لحظه را تکرار کنم لحظه ای که از پیش ماری به خانه آمدم ولی او مزرکا می زد. انسان نمی تواند لحظات را تکرار کند یا آن را به دیگری منتقل کند مثل وقتی در آن شب پایزی ادگار وینکن در باغ ما صد متر را در ده و یک دهم ده ثانیه دوید من خودم وقت گرفته بودم و فاصله را هم خودم اندازه زده بودم او در آن شب صد متر را در ده و یک ثانیه دوید آن شب سر و قوی بود ولی طبیعی است که این ادارا هیچ کس باور نکرد اشتباه از خود ما بود که اصلا در این باره صحبت کردیم و میخواستیم به این وسیله این لحظه را جاودانه کنیم. ما باید فقط از اینکه توانسته بود صد متر را ده و یک دهم ثانیه به خوشحال و خوشبخت باشیم. طبیعی است که ادگار دیگر نتوانست به آن رکورد برسد و صد متر را در ده و نه دهم یا یازده ثانیه دوید. حرف من را باور نکردند و به ما خندیدند، صحبت کردن درباره این گونه لحظات غلط است و کوشش در تکرار آن خودکشی. اینکه حالا پای تلفن به مازورکا زدن مونیکا گوش می کردم یک نوع خودکشی بود. لحظات قابل تکراری وجود دارد که تکرار در وجودشان است، مانند اینکه چطور خانم وینکن نان را می بارید ولی وقتی من خواستم این لحظه را با ماری تکرار کنم و از او خواهش کردم آنطور که خانم وینکن نان می بارید آن را ببرد، نه آشوست یک آپارتمان کارگری اتاق هتل بود و نه ماری خانم وینکن چاقو در دست ماری خرد و بازویش را برید و این واقع سه هفته ما را عذاب داد احساساتی بودن می تواند چنین نتایج شیطانی به بار بیاورد انسان نواید کاری به کار لحظات داشته باشد هرگز نواید آنها را تکرار کرد وقتی مونیکا موزر کار را تمام کرد از فرت اندوه حتی نمیتوانستم گریه کنم او این موضوع را فهمیده بود چون وقتی پای تلفن آمد فقط آهسته گفت حالا دیدید گفتم اشتباه از خودم بود نه از شما مرا ببخشید احساس میکردم مست و متعفن و قهر در استفراغ خود در جوی آبی افتادم و مشغول نفرین کردن و دشنام دادنم و در این حال عکاسی خبر کردم تا از من عکس بگیرد و عکس را برای مونیکا فرستادم آهسته پرسیدم اجازه دارم یک بار دیگر به شما تلفن کنم شاید چند روز دیگر حالم خیلی بد است و نمیتوانم برایتان توضیح بدم که دچار چه احساس نکبت‌باری شدم فقط میخواهم برایتان علت این حال را توضیح بدهم جز صدای نفس کشیدنش چیزی شنیده نمیشد بعد آهسته گفت من چهارده روز به مسافرت روم. پرسیدم به کجا گفت جایی برای تمرین و اجرای مراسم مذهبی و کمی تمرین نقاشی پرسیدم کی به اینجا میآیید و برای من یک عملت قارچ و یکی از آن سالات های قشنگتان را درست کنید گفت نمی توانم بیایم حالا نمیتوانم گفتم بعدا چطور گفت می پیش از اینکه گوشی را زمین بگذارد صدای گریهش راشن